دیشین آرامش داشته باشین آشنا داشتین؟ می‌دونین؟ یوز ژین چایو اون لاین رو جوجه آره یست وقتی یه بهترین بعد کتیمی بر ما ما رب من ادین که ما خدا را بر امروز نکنیم که ده را و مخلوق که برده ای کتاب در به انجام خواهد بی اون بماریتی بسکرونی شما ملک برادش نکنی شما را فرادش شما نیم شک رو کنید و برابر نعمت حالی که بهشم از دادم البرترت وادی جمیله با همین که سازمان خدایی اون خوب لی ودر و آغاز فرمود تا وقتی مهکم مهه اطایت نیمه تایخ در نزالی گیلی و نشبت بخدای مطاق و و در نزالی داشتاداشی و در نزالی مطاقی و جوری که وفراموس کنیم سیز از از فراموس دنیمیسی اینه بیمیتر روزیرون میره افنده کی بناد آداشو بیدر ببان اکرم وی آیات متراتیم وی مکررس سرگان تایید میبرمان الله <سؤال> الله الله ولا الله و اولاک تکنون قاسبون ولا تکنون دون و تأیید خدا در یادتون باشه همیشه ولا تکنون دون نسول و آنسان و آنسان را خوراک زیلته ها کی بدان؟ وجودیم ولی آتاکم مکن لکن انسان‌ها فراموشان می‌شوند. را چون خودشون رو به یادشون چیه چی کار است و چه وابیعتی هر حال اذارانه باید درامش کرد مازالله منجر نفس خودمون و خیلی خودمون امکانات و امکانات و چیج شهیدانی مستی دانی، شهیدانی چلی دانی به